بسم رب الحبیب به نام خداوند رفیق بارز درود خدمت شما عزیزان همراه و همسفر با یکی دیگر از داستان های افسانه های جادوگری در خدمت شما هستم امیدوارم که تا به انتهای این داستان هم با بنده همراه و همسفر باشید این داستان بامبو تو به نام خدا در زمانهای بسیار قدیم زاهدی بود که به نوشیدن چای علاقمند بود او اغلب اوقات چای رو خودش دن کرد و بسفاس عجیبی هم نسبت به قوری کتری خودش داشت یه روز همونطور که در خیابون قدم میزد چشمش به یک مغازه اشیای دست دوم عتیقه افتاد و وارد شد و میون اشیای عتیقه یک کتری آهنی بسیار قشنگ دید. کتری بسیار قدیمی و کهنه و زنگ زده بود. اما زاهد تونست از زیر زنگ ها زیبایی کتری رو تشخیص بده و اون رو بخره. زاهد اخونه برگشت و کتری قدیمی رو چندین بار شست و سایید طوری که تمام زنگ ها پاک شد و زیبایی کتری نمایان شد. زاهد بیر سه نفر از شاگردان خودش رو صدا کرد و گفت نگاه کنید چه کتری قشنگی خریدن حالا من در اون آب می تا با اون یک چای خوشمزه درست کنم. همین کار رو هم کرد. کتری پر آب کرد روی اجاق گذاشت و سعب کرد تا آب جوش بیاد. کتری داغ و داغتر می شد یه ناگهان اتفاق عجیب و حیرت انگیزی رخ داد. کتری تبدیل به یک گورکن شد. گورکنی با دم بسیار پرپشت و چهار دست و پای کوتاه گورکن که تنش میسوخت فریاد زد وای سوختم سوختم کمکم کنید نجاتم بدید و با گفتن این حرفها از روی اچاق جست زد و پایین پرید و بنا گذاشت به دور اتاق دویدند زاهد و شاگردانش حیرت زده با دهان باز به گورکن نگاه میکردند که یک مرتبه زاهد پیر فریاد کشید چرا ایستادید بر رو بر نگاه میکنید؟ اون رو برید بگیرید نگذارید که فرار کنه زود باشید عجله کنید شاگردی یک جارو برداشت و اون دیگه یه انبور و سومی هم یک ملاقه بزرگ و هر سه نفری به دنبال گورکن دویدند ساعتی نگذشته بود که اون رو گرفتند. اما دیگه از سر و پای کوتاه گورکن خبری نبود بلکه شده بود مثل اولش یک کتری کهنه قدیمی وقتی زاهد این صحنه را دید گفت این حتما یک کتری سهرامی من هرگز اجازه نمیدم چنین چیزی در معبد باشه ما باید هرچه زودتر از شر اون خلاس چیم. هر هرچه زودتر بهتر درست در همین وقت از خیابون صدایی شنید لباس کهنه می خریم. کتریه که نه می خریم. زاهد پیر که این صدا رو شنید بیمعتلی کتری رو برداشت و از خونه بیرون رفت. سمسار کمی از خونه دور شده بود و زاهد اون رو صدا کرد و گفت من یک کتری قدیمی بسیار جالب دارم. هرچه فکر می کنیم به من بده و اونو رو بگیر. سمسار کتری رو گرفت و این دست اون دست کرد و بعد به قیمت خیلی ارزون اون رو خرید. و خوشحال راه خودش رو به پیش گرفت. کمی که از مبد دور شد دست در کیسه خودش کرد و کتری و بیرون ورد و نگاهی به اون انداخت و با خودش گفت این یک کتری عتیقه است، خیلی مفت او ازشنگی پیرمرد در آوردن. در حالی که سوود میزد و آواز میخوند به طرف خونه به راه افتاد. اون شب مرد سمسار با خوشحالی به رخت خواب رفت تا بخوابه خونه آرام و ساکت بود و ناگهان صدای عجیبی به گوشش رسید آهای سمسار آهای آقای سمسار با شما هستم خواهش میکنم به حرفای من گوش کنید مرد سمسار چشمان خواب رو باز کرد و به دوره بر خودش نگاه کرد و چیزی ندید و رفت یک شمع روشن کرد کیه که منو صدا میکنه گفت من اینجام روی تاخچه نگاه کنید کشم سمسار به کتری افتاد که حالا سر دوم و پاهایی به شکل گورکن داشت. سمسار گفت ببینم تو همون کتری نیستی که من امروز از ظاهر پیر خریدم. گورکن جستی زد و از تاقچه پایین پرید و مرد سمسار از وحشت فریادی کشید. گورکن گفت نترسید درسته من همون کتریم اما من یک کتری معمولی نیستم. در واقع من یک گورکنم. که شکل عوض میکنند اسم من بامبوتوست یعنی خوشبختی مرد زاهد من رو روی اجاق گذاشت که نزدیک بود بسوزن اما من از دست اون فرار کردم اگر تو قول بدی با من خوشرفتاری کنی به من غذا بدی و هرگز من رو روی اجاق نگذاری منم به تو قول میدم برای همیشه پیش تو بمونم و تو رو خوشبختت کنم سمسار پوزخندی زد و گفت تو چطور میتونی منو خوشبخت کنی؟ کورکن دوم کلوفت خودش رو تکون داد و گفت من حقه های زیادی ولدم کافیه که منو در یک نمایشگاه بذاری و بیرید بفروشی تا مردم بیان و منو ببینن من حقه های زیادی به اونان نشون میدم مرد سمسار کمی فکر کرد و بعد دستاشو محکم به هم کوید و گفت فکر خوبیه فورا همین کارو میکنم اما مواظب باش که به من کلک نزنی چون کاری میکنم که حتی زاهد پیر هم دلش به حالت بسوزه صبح اون روز مرد سمسار در گوشه ای از حیات خود نمایشگاهی برپا کرد و پارچه بزرگ جلوی خونه نصب کرد و روی اون نوشته شده بود بامبوتو کتری سهرامیز و حقه بسیار عجیب او شما با خریدن یک بیلید میتونید حقه های زیادی از بامباتوی کتری سهرامی زیاد بگیرید. همان روز صدها نفر برای دیدن بمبتو و حقه های عجیبش به نمایشگاه اومدن. مرد سمسار بر تبر کوبید و اعلام برنامه کرد. بمبتو ظاهر شد و با حرکات آکروباتیک خودش رو به مردم نشون داد و مردم رو شگفت زده کرد. از میون همه بازی ها اون چه که مردم رو به تعجب و حیرت باداشت حرکت بامبوتو روی تناب بزرگ بود. اون در حالی که در یک دست باد بزن و در دست دیگهش یک آینه بود روی تناب راه میرفت و آواز میخوند. مردم برای اون دست میزنند و هلهله میکردن. سمسار از اینکه که میتونست هر روز پول بسیاری به دست بیاره خیلی خوشحال بود. و بعد از پایان نمایش سمسار تعداد زیادی کیک برنجی و سیب جنگلی به بامبوتو داد تا بخوره. به این ترتیب سمسار تونست از فروش بیریت ثروت بسیاری به دست بیاره. یک روز به بامبوتو رو کرد و گفت دوست عزیزم من حالا به اندازه کافی پول دارم و تا هم حتما خسته شدی بهتره تو رو به معبد ببرم تا بقیه تو در اونجا به آرومی سپری کنی. بامباتو گفت فکر خوبیه من واقعا احتیاج به استراحت دارم اما ترس من از مرد زاهده میترسم نه تنها به من نده بلکه منو رو روی آتیش هم بگذاره سمسار با تو با مقداری کیک برنجی و میوه جنگلی که برداشته بودند به معبد رفت و به معبد که رسیدن سمسار تمام ماجرا رو برای زاهد تعریف کرد کیک برنجی و میوه مقدار زیادی پول به اون داد تا خرج معبد کنه و آخر سر گفت حالا اجازه بدید بامبوتو در معبد زندگی کنه و قول بدید که هرگز اون رو روی آتیش نگذارید. زاهد قول داد که کتری رو در محل اشیای قدیمی و عتیقه قرار بده و هرگز هم روی آتیش نگذاره اون رو. سمسار با کتری سهرامیز خداحافظی کرد و اون رو بوسید و به زاهد داد و خودش راه رو گرفت و رفت زاهد پیرو شاگردانش بامبوتو رو به محل اشیای کهنه و عتیقه بردن و میگن سالها میگذره و بامبوتو همچنان در معبد و در محل اشیای قدیمی که خیلی با ارزش زندگی میکنه اون بسیار راحت و خوشبخته و هنوز هم از اون کیک های که سمسار برای اون گذاشته بود میخوره بله عزیزان دوست همراه و همسفر من یکی دیگر از داستان‌های افسانه‌های جادوگری رو شنیدید و امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و امیدوارم که در داستان‌های بعدی افسانه‌های جادوگری با من همراه و هم سفر باشید تا دیدار بعد و قصه دیگر از افسانه های جادوگری شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی سلامتی و دلیخوش دارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان همراه و همسفر مراقبه خوبی های خودتون باشید. کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی